پرستاری با سینی صبحانه آمد و بیدارم کرد پرسیدم دقیقا کجایم انگار از بی تعجب کرده بود درمونگاه میرابو وقتی نشانی درمونگاه را پرسیدم جواب نداد با لبخند ناباورانهی نگاهم میکرد خیال کرده بود دارم سر به سرش میگذارم بعد برگی از جیب روپوشش بیرون آورد آن را خواند و گفت باید از ساختمان بروم پرسیدم کدام ساختمان زمین بالا و پایین میرفت. درست مثل خوابم. خواب دیده بودم وسط دریا توی کشتی باری زندانی شدم میخواستم هرچه زودتر به خشکی برسم. در مانگاه میرابو خیابان نسیستی است. جرت نکردم بپرسم این خیابان در کدام محله است. نزدیک بیمارستان مرکزی. به نظر میرسید عجله دارد و بدون که توضیح بیشتری بدهد در راب غوزک پا زانو مچ و سایدم را باند کرده بود نمی توانستم پای چپم را خم کنم ولی موفق شدم لباسم را بپوشم در حالی که لنگ کفش را پایم می کردم با خودم گفتم راه رفتن در خیابان باید سخت باشد ولی حتما این نزدیکی ها اتوبوس یا مترو پیدا می کنم و خیلی زود به خانه می رسم تصمیم گرفتم دوباره روی تخت دراز بکشم هنوز آن احساس آسایش در وجودم بود آیا مدت زیادی طول می کشید؟ می با بیرون رفتن از درمانگاه تمام شود با دیدن آسمان آبی در چارچوب پنجره مطمئن شدم مرا به کوهستان آوردند از رفتن سمت پنجره خودداری کردم میترسیدم زوق و شوقم از بین برود میخواستم تا آنجایی که میتوانم خیال کنم این همان درمونگاه میرابوز که در ایستگاه ورزش‌های زمستانی آنگادین قرار دارد. در باز شد و پرستار تو آمد. با خودش کیسه پلاستیکی آورده بود که روی میز پاتختی گذاشت و بیان که حرفی بزند مثل باد بیرون رفت. توی کیسه کفش گم شده ام بود. زحمت کشیده و برای پیدا کردنش به پیاده رو رفته بودند. شاید هم زن از آنها خواسته بود از آن همه توجه نسبت به خودم تعجب می کردم. حالا دیگر مانعی برای به قول پرستار ترک ساختمان وجود نداشت میل داشتم در هوای آزاد قدم بزنم موقع پایین رفتن از بلدکان بزرگ کمی میلنگیدم و حفاظ را گرفته بودم توی سالن ورودی وقتی میخواستم از در شیشه‌ای که یک لنگش باز بود بیرون بروم، موخرمائی چهارشانه را دیدم. روی نیمکتی نشسته بود، با دستش علامتی داد و بلند شد. همان پالتو آن شب را پوشیده بود. به دفتر پذیرش راهنماییم کرد. اسمم را پرسیدند. کنارم ایستاده بود، انگار میخواست هایم را بهتر زیر نظر بگیرد. دوست داشتم از شرش خلاص شوم و بروم. هرچه زودتر همان جا توی سالو نخ یابان خانوم مسئول پذیرش پاکت مهر شده ای داد که اسمم رویش نوشته شده بود وقتی برگه خروج رو امضا کردم پاکت دیگری سمتم گرفت که روی این یکی اسم درمانگاه نوشته شده بود فرسیدم باید چیزی بپردازم؟ جواب داد صورت حساب قبلاً پرداخت شده توسط چه کسی؟ به هر حال پول زیادی نداشتم. وقتی می‌خواستم از سالن رد شوم و سمت خروجی بروم، موخورمایی چهارشانه خواهش کرد کنارش روی نیمکت بنشینم. با دیدن لبخند بیمعنایش به خودم گفتم شاید با من دشمنی نداشته باشد. دو برگه کاغذ نازک نشانم داد که رویشان متنی ماشین نویسی شده بود. گزارش هنوز یادم است همین کلمه را به کار برده بود بله گزارش تصادف دوباره باید پایین برگه را امضا می‌کردم از جیب پالتوش خودکاری در آورد و درش را برداشت گفت قبل از امضا می توانم بخانمش ولی من برای رسیدن به هوای آزاد خیلی عجله داشتم برگه اول را امضا کردم دومی امضا خواست چون کپی بود و باید پیش خودم می ماند تا کردمش و توی جیب کتم گذاشتم بعد بلند شدم دنبالم راه افتاد یعنی دوباره میخواست مرا سوار ماشین پلیس کند و دوباره زن را ببینم که مثل آن شب سر جایش نشسته بیرون توی خیابان کوچکی که به خیابان ساحلی میرسید فقط یک اتومبیل ایستاده بود مردی پشت فرمان بود دنبال حرفی میگشتم تا از او اجازه مرخصی بگیرم اگر با بد رفتاری ولش می مشکوک می شد و دوباره یقم را می گرفت. به خاطر همین پرسیدم آن زن کیست؟ شانه بالا انداخت جواب داد خودت توی گزارش می بینی. ولی هم برای خودت و هم بقیه بهتر است این تصادف را فراموش کنی. تا آنجا که به او مربوط می شد غضیه تمام شده بود. و سای دل امیدوار بود برای من هم همین دور باشد. کنار اتومبیل ایستاد و با لحن سردی پرسید درد زیادی برای راه رفتن ندارم با یا میخواهم تا جایی برساندم؟ نه راضی به زحمت نبودم بعد بدون آنکه خداویسی کند کنار راننده نشست در را محکم بست و اتومبیل راه افتاد سمت خیابان ساحلی